الحمد لله حمداً الحمد لله سلام علیکه يا بقية الله يا صاحب الزمان يا معز اولیاء و یا مضلل اعداء اغسنا و ادرکنا. نحن زیوفک نحن اختامک نحن المنتظرون للاستشهاد بین یدیک و فی سبیلیک سلام علیکم جمیعا اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري لا تحملني اوقدتنا اللسان يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاۃ علی خاتم المرسلین شفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد و علی آل محمد تعالوا مولانا بقیت الله في عالمین حجل الله فرجه و الله ظهوره و الله رؤیته و صحبته و خدمته و رضاه و و علی و اعدائهم اجمعین شما بندگان خوب خدا و خودم را برایت تقوا الهی توصیه می کنم شرط قبولی همه خوبی هاست تقوی حسنس است دجر است. حفاظ است آدم را از آتش جهنم محافظت میکنه انسان را از رسفایی در محضر خالق و خلق تجامی دارد به انسان تداوست میده پاکی میده از این رو بر همه ما در زندگی رضای خدا را در نظر بگیریم و از خشم خدا سخت در هراس باشیم در رعایت اخلاق پرهیز از مردم آزاری خانواده آزاری پدر آزاری مادر آزاری فرزند آزاری همسایه آزاری مشتری آر آزاری ارباب رجوع آزاری یزاع مردم ظلم به مردم ظلمت قبر است و ظلمت قلب است از ظلم ظلمت القبر و ظلم مخصوص پادشاهان و رؤسای کشورهای مختلف دنیا که حکومتها به مردم ظلم میکنن اختصاص به اونا نداره خانه ما باید خانه امن باشه و خانه عدل باشه و خانه اخلاق باشه و خانه لطف باشه خانه خدمت همه اعضای خانواده مسابقه در خدمت بگذارند مرنج و مرنجان باشن شعارشون این باشه که حق با مشتریست من تکلیف دارم که توقعی از دیگران نداشته باشم. اینا عائله خدان و من هم بنده خدا هستند و عائله خدا خدمت میکنم که اگر انسان توانست از کانون جهنمی ظلم در خانواده در محیط در اداره برای خودش مسانیتی درست کند این انسان با ملکه عدالت به قرب خدا نائل خواهد شد که فرمود هو و او بعقرب عدالت انسان را به تقوا نزدیک میکنه ظلم انسان را از تقوا دور میکنه یه آدم بیا آدم گردن کلفتی خودی نشون میده گردن کشی میکنه و در برابر او حیمنه داره خب اما اعضای خانواده همه بندگان ضعیف خدا به همدیگه احتیاج دارن این چوده مردمی همسایه که همه احتیاجی به نوع محبت، نوازش، تفقد، کمک دارن این همه جوانهای آماده و بیکار که گاهی در اثر نبود سرگرمی افسردگی پیدا میکنند و این همه خانواده گرفتار فشار اقتصادی ما با رفتار خودمون با اعمال خودمون با تجملات خودمون بر رفاه خودمون دل اینا رو به درد نیاریم به اینا ظلم نکنیم با اینها مباسط داشته باشیم همراه باشیم در خطبه اول توفیق داشتیم افتخار داشتیم که در تفسیر سوره مبارکه امال کتاب سبع نثانی سوره این بارکه فاتحه کتاب سوره هم با شما نزدیکان خدا مهمانان خدا گوشون حق که روزهای جمعه می مانور ما و عظمت در برابر شیاطین میدید، دید صحبتهایی رو با هم داشتیم یا که معبود و یا که نستعین منحصر است عبادت به خدای متعال عبادت خاص ذات است و عبادت است برای مظهریت خدا این حدیث شریفی که مشکورم هست و خیلی از شماها قاعدتاً ذهنتون آشناست و در کتاب شریف عرفانی نورانی نسباح و شریعه آمده است از امام صادق علیه السلام العبودیتو جوهرتون خون ها ربوبیه بندگی یک گوهری است یک حقیقتی است که اگر انسان مسیر بندگی رو طی کند سلوک و سیرش سفرش در در دنیا در حد بندگی خدا باشه از خط عبودیت خارج نشه کنهش روبوبیته انسان مظهر روبوبیت خدا میشه به مقام کن فی کن که از شعون روبوبی حق انسان دسترسی پیدا میکنه این که شما میبینید بیمارها پشت پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام تناه می روند کنار زری ششگوشه می روند. در بغداد حتی در میان برادران اهل سنت حضرت مصر جعفر به با عنوان باب الحوایج شهره است و اینها در ها به اون بزرگوار تناهنده می شوند و معصومین مریض رو بستری نمیکنند، جراحی نمی دارووش داروش هربت بهش نمی نگاه میکنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند و این مظهریت ربوبیت و خداست انما امره اذا ارادش شیئا اَنْ یقول له کن فیکون در نابود کردن معمورین امریکا در صحرای طبست ظهور قدرت کن فیکون ربوبی بود و اولیاء الهی هرچه را بخواهند همون اراده خداست و حتما محقق می شود این عبادت مخصوص ذات ربوبی است. مرحوم آیت الله خویی یک جل تفسیر داره به نام البیان مطالب با ارزشی در این کتاب شریف ایشون گفته بودند آیات تواتبی طبع علامه بزرگوار تضحیه کردند برای قرآن خودشون رو به قربانگاه فرستادند. عمرشون رو، شخصیتشون رو، آبروشون رو فدای قرآن میکردن ولی خود ایشون بیش از یک جلد نتوانست مرجعیت، زعامت ریاست حوزه زعامت مقلدین بلاخره شانیت شونه، اما همون یه جلدش بسیار مختنم است ایشون در این کتاب به مناسبت ایا کنعبد و ایا کنستعین که عبادتی که عرف ازش میفهمد همون پرستش است. عبادت در لغت عرضم معبد زمین صافی که زمینه داره آدم پا روش بگذاره زیر پای آدم رامه این زمین زمین معبد است. اما زمین های سنگلاخ زمین های ناهنبار که گویا تمکین نمی کند رحروان روی او پا بگذارند و پا کنند اونجا معبد نیست دلی که برای خدا رامه برای اجراع دستورات خدا پذیرش القاات وحی رام است بدنی که در برابر احکام الهی شرع انور رام این عبودیت داره هیچ نو سرکشی نداره هیچ نو پوزی اینکه من این جور میفهمم قبول نمیکنم نداره این عبد است و این خضوع و خشوع در اوج خودش هست لیکن پرستش که شاخه از بندگیز، این فهم متعارف است کسی که میگن بنده است یعنی او رو میپرستد در برابر او پرستش دارد کرنش آبدانه دارد، عاشقانه دارد این نوع عبودیت مخصوص ذات احدیت است و خدا اجازه به احدی نداده است چون خالق یک خالق بیشتر نیست و اونهایی که شریک در بندگی قائلند یا برای خدا شریک در خالقیت قائلند یا هجابی بین خدا و خلق معتقدند و میگن چون دسترسی به خدا نداریم باید با واسطه بطه برویم. برمیم منشهش هرچی باشد شرک ان شرکل از عظیم جناب لغمان به فرزند خودش توصیه میکند کند نکند در گودال شرک بیفتی شرک ظلم عظیم است و خدا برد منان در قرآن شریف فرمود که ان الله لا یغفر ان و بکد به و یغفر ما دون از خدا نمیبخشد کسی مشرک بمیرد اما مادون شرک رو خدا میبخشد غفاریت خدا سعه عفو خدا بر محدوده گناهان اش بیشتره ما در دعاها در تقیبات نماز عرض می‌کنیم الهی ان کان ذنبی عندك عظیما فاعف اعظم کر ذنبی. بی خدایا اگه گناه هم بزرگه اگه گناه هم زیاده ولی عفه تو بزرگتر است وسیع تر از هرقدر گناه کرده باشم به سعی تو نمیرسد لذا همیشه گناهکار هر قدم گناه کرده باشه باید امید به رحمت و عف خدا داشته باشد و این سعی عف خدا به نص سریع قرآن اختضا کرده هر گناهی رو خدا میبخشد ولی خب اختیار با خودشه ما که نمیدونیم کیو میبخشه کیو نمیبخشه اما اعلام فرموده به جز شرک همه گناهان قابل عفو گذشته است شرک قابل عفو نیست حالا این شرک چیه هستش حقیقتش چگونه هستش امروز دنیای اسلام مبتلا به حابیت است. که این جهنم سوزان اینا برای خودشون درست کردن برای جهان بشریت و اصر ما هم خود اینا جهنم اینا یه تعبیری از شرک دارند که اختضا دارد انشاءالله عمری داشتیم در خطبه بعد نسبت به این یه مقدار صحبت کنیم یه مقدار مرزه ها را از دیدگاه وی و روایات اهل بیت اسمت بتوارد و سیره اهل بیت اسمت حتی صحابه صدر اسلام مشخص کنیم تا معلوم بشود که حرف های ابن تیمیه که امروز این وحاوی ها سلفی ها مقلد پیغمبر نیستن و سخونهای پوسیده ابن تیمیه رو دارن عبادت میکنن و شرک میورزن به خدا حکم خدا را از غیر میگیرن اینای خورده وضوح بیشتری پیدا بکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد و آل محمد نستغفر الله و نتوب و و نعوذ به من شرور انفسنا و من فتن زماننا و نسأل الله الفرج و ظهور للحجه و نصر لهو و لأشیاغه و اتباعه عباد الله به تقبل الله شما بندگان خوب خدا و نفس ضعیف و گرفتار خودم را به تقوای الهی توصیه میکنم تقوا ریسمان است انسان را به حق متصل میکند دل رمیده را با خدای خودش معنوس میسازد تقوا بازگشت به خداست آشتی با خداست اون سبا خداست تیه طریق امانت و صداقت است بسم الله الرحمن الرحیم قول اعود و برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وصل صفی صدور الناس من الجنت آن‌ها بسم الله اعوذ بالله من همزات الشیاطین اعوذ <و> به رب من ان يحذرون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل وسلم على سید الانبیاء مولانا عبد القاسم محمد على و على و على و و صلى على المؤمنين البسيين علي ابن ابي طالب وصل على فاطمة سیدت نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سيد نبي الرحمة والسيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى و محمد ابن علي، علي ابن محمد، بالحسن الزكي العسكري، بالخلف الصالح، الحجة القائم، خلافه ای که فی ارضیک و امنا ای فی بلادیک به هم تامِن اعداهم نتقرب و الى الله تعالی و عباد الله به تقبل الله تقوى تقبا راयत حرمات خداست غرقگاه های خدا بعد فکرمان نامشروع نباشه اعتقاداتمون نور باشه بر اساس تعلیمات پیغمبران باشه اخلاقمون باید اخلاق نوری باشه اخلاق بهشتی ها باشه ملکاتمون صفاتمون خسلت هامون متحجد بودن شب زنده دار بودن مقیم الصلاح بودن، بودن معتزکات بودن غیر از عمله ها روح من اینجور باشه حقیقت من عدل گستر باشه تو وجود من ظلم راه نداشته باشه عدالت برای ما ملکه باشه پرهیز از گناه برای ما ملکه باشه افت ملکه باشه سخاوت شجاعت این ملکات منشأ رفتار و اعمال ماست از صفات انسان با انسان در قبر هم نشینند انسان صفاتش رو باید صفات نوری تخلق و اخلاق الله قرار بده در رفتار چند از قیبت از دروغ از تهمت، از نمامی پرهیز داشته باشه از حرامخوری از رشوه از ربا از این آلودگی هایی که جامعه ما از این آلودگی ها رنج میبرد از اینها پریز پرهیز کنیم تا تقوای فکری تقوای ملکعی و خصلتی و تقوای عملی رو داشته باشیم در مورد حضرت یوسف 124 هزار پیغمبر داریم ولی یک سوره کامل در مورد حضرت یوسف آمده است خدا او رو تابلو کرده و سوره یوسف نه تنها برای جمون‌ها در بعد افت دامن، پاکی دامن درس است، آموزش است. بلکه برای همه اصناف و طبقات درس حکومت داری است، چشمانداز نگری برنامه مهوری انواع رموز زندگی حکومتی، سیاسی، عرفانی، ولایی در جریان حضرت یوسف وجود دارد. و یوسف یک شخصیت جامع و کامل است. اما رمزش انهم من یتق و یصبر دو تا بال داره با این دو بال اوج گرفته، رفته به جایی که عقل ما به اونجا نمیتونه پرواز کنه. یوسف کسی است که پیرهن او این رهاوی های نادان یه نگاهی به قران بکنه یوسف کسی است که با قاطعیت گفت اذهبوا بقمیص هذا این پیرهن من رو ببرید و به صورت پدرم بیاندازید نگفت محتملا احتمالا شاید گفت یعت بسیرا را چشم نابینای او با این پیرهن من بینا خواهد شد فلم ما انجا البشیر و القاه و وجهه وجهی پرتد را الله اکبر و وقت این نادانها از امام حسین ما که تربت شفا باشه از امام رضای ما که زریحش و پنجره فولاد شفا باشه این جور قوقای شرک به پا میکنن که نه شرک را میدانند نه توحید رو قرآن داره میگه پیران حضرت یوسف یه پیغمبری رو از نابینایی نجات داده است اما رمزش دو چیز است یکی تقواز دومی دو صبر این من اومن یتقه رجسته در این خطبه دوم ابتداعا این حجتی که خدای متعال به تعبیر مقام معظم رهبری این شهید زنده این الگوی تمام ایار این مرد آسمانی تعبیر زیبایی فرمودن که شهید حججی را خدا با عنوان حجتی پیش چشمان همگان قرار داد الحق و حجت بر همه تمام بازیگری ها بسه سیاست بازی ها بسه در میان همین اقواگری ها همین بازی های سیاسی همین رقابت در قدرت ها همین حز بازی ها جریان بازی ها، یه جوان 25 ساله رو خدای متعال علم میکند. خط بطلان بر همه حرکت های انحرافی میکشد. چه محسنی من به او میگویم، یا محسن و بد عطا کرد مظهر احساد الهی شد سفری رحمت خدا شد عبرت بود برای ما از بندگی خدا چیزی زیان دیده است یک جوان 25 ساله چه موجی چه طوفانی چه حرکتی چه نوری در دنیا ایجاد کرد و همه قلوب را متوجه سنگر جهاد و ایثار و تقوا و ایمان و بلایت مداری کرد ساره که از بهارش پیداست اونجور که نقل میکنن پدر خانم قهرمان ایشان که همسرش هم انصافند گویا تو سنگر حضرت رباب نشسته تو سنگر بانوان تبلیغی امام حسن نشسته یک مبلغ تمام عیار روحیه جهادی و انقلابی و شهادت است محریهی که براش قرار دادن 124 هزار سلوات بوده حفظ قرآن با معانی او بوده که این شهید بزرگوار رجت الله شد در زمان ما این بزرگوار پونزده جوزه از قرآن رو به عنوان مهریه همسرش همسرش ازبر کرده بوده بقیهش هم اونجا میگن اقره برقه بخون برو بالا ما کجاییم؟ گیرم 70 سال 90 سالم عمر کردیم چه کردیم با چی داریم با چی رویی داریم با آلم آخرت می رویم؟ این حجت خداست هم بیاناتش هم استواریش هم آرامشش هم وسیعتش و هم منش و روش پدرش و مادرش و همسرش همه برای ما الگوست و باید مسئولین ما از او الگو بگیرن و خود ما هفته دولت شاء انشاءالله که همین جوره رویش خواهد حضرت آقا فرمودند جوانهای زیادی این آمادگی رو امروز دارند که از همه چیزشون بگذرند و در میدان جهاد و دفاع قدم بگذارند و جانشون رو در راه خدا نصار کنن این یک موردش است. جوانهای زیادی به خود ما مراجعه میکنند مادرانی به ما مراجعه میکنند برای فرزندانشون جوانها و نوجوانهای انقلاب هرگز غروب ندارد فکر نکونید اینها کمن اگر کمن بودن کم منفعت قدیله غلبت فئات به باذن الله گرچه کمن نیستن ادعی غافل نباشند فکر کنن همه لیبرالن همه سکولارن همه دنبال زندگی مرتفع اشرافی هستن ما شهید حججی ها داریم و به حمد الله اینها امروز سر سفره شهدا مایه افتخار تاریخ و مایه بقای انقلاب ما هستند و این جریان ادامه دارد یک جریان است یک تفکر است یک شجره طیبه است که توتی اکله ها کل حینن به ازن ربها ها همیشه می بخواهد داشت هفته دولت به مناسبت اینکه در این ایام دو عنصر تربیت شده دامن مکتب دو شیعه سرفراز دو انسان متعبد دو انسان ولایتمدار شهید رجایی و شهید باهنر که ریاست جمهوری دار در نظام اسلامی عمل شهید رجایی معنی کرد ریاست جمهوری به پز دادن نیست به رفاه و تجملات و رضایت بیگانگان نیست در نظام اسلامی رئیس جمهور در بندگی گوی سبقت را برده است در ولایت مداری مدال گرفته است و ارزش معامله با خدا پیدا کرد که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و انوالهم. شهید رجایی به شهید باهنر شاخص مسئولیت در نظام اسلامی هم. یک مسئول تراز نظام اسلامی که بر پایه خون شهدا و بر مبنای فقاهت قرآنی و روایی مبتنی هستش نایب امام زمان رهبر اوز باید چون نظامی چونه به جمهوری و چنان نخست وزیری داشته باشد من چند شاخص از شاخصهایی که در نظام اسلامی باید همه مسئولین دارا باشند و این دو عزیز سفر کرده دارای اینا بودن چند نمونه اش را عرض می کنن. یکی ایمان و باور واقعی بود اینا یؤمنون بالغیب بودن غیبشون هم ایمان داشت همون گونه که علنشون ایمان داشت شهید رجایی از خودش لحظه قافل نبود ریت جمهور شد لباسش عوض نشد زیش عوض نشد اخلاقش عوض نشد روابطش عوض نشد ولایت مداریش گل کرد تمام دقدقهش این بود که نکند امام دستوری بدهد به اینا تعللی کرده باشند در انجام دستور نایب امام زمان و بلی زمان خودشون و برای خودش خلوت داشت علاوه بر تفکر در خلوت از بعض روحانیون صاحب نفس و اخلاقی در خلوت می نشه زانو زد موعظه کرد که نکنه خودشو گم کنه امروز ما توقعیمون از دولت محترم از مجلس محترم از قوه قضایی محترم اینه که خدا را در محیط خودشون مطرح کنن خدا را ببرن تو محیط کارشون موزدش نوند بیاد خدا و قیامت کسی اینا رو بندازه در بعضی از نهادها این خیلی کم رنگ شده است رئیت جمهور خودش خلوت میکرد نه نبره دیگران دیا میکرد خودش خلوت میکرد روحانه بزرگوار استادمون میگفت وقتی من برای ایشون صحبت کردم و از لقای الهی سخن میگفتم یه مرتبه رفت تو خودش یه چیزش شد که دیگه طولی نکشید شروت شهادت را نوشید این برای همه ما لازم است بزرگان ما اونهایی که زعامت مذهبی داشتن مثل مرحوم میرزای شیرازی الله مقامه هفته یک روزش پرداختن به خودش بوده تا آدم قلب سلیم نداشته باشه تا خودش آدم سالمی نداشته باشه کرم مالدوستی و عتش قدرت مادامه که در یک مسئول هست این نمیتونه منبکت رو سالم سازی کنه این نمیتونه ادارات سالمی داشته باشه به این هنر شهید رجایی و شهید با هنر با اینکه عالم بود فاضل بود نویسنده بود اهل قلم بود اهل منبر بود ولی مقابل رجایی زانو میزد اون مسئله مسئله من نبود مسئله خدا بود دو تا ایشون یک روح بودند در دوتا بدن و با چه صفایی به عرصه خدمت آمدند دوم خستگی ناپذیری این اقتصاد مقاومتی جز با مدیرانی در تراز شهید رجایی و شهید باهنر امکان ندارد عملی بشود مشکل بیکاری که آقای رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی قول دادن در سال 955 نفر مشغول کنند و تولید را 8 درصد در سال بالا ببرند این وعدهها وقتش هست که عملی بشود به این نمی شود مگر با یک روحیه تلاش جهادگرانه من ساعت ده شب بود در چهارراه شهید قدوسی در داستانه کل انقلاب به محضر شهید آیت الله قدوسی در دفتر کارشون رسیدم اونجا من دیدم آیه قدوسی جسمش اینجاست ادساد هم فلعمل و قلوب هم فلجنان از اینکه شهید بهشتی شهید شده است و شهدای حزب به مقصد اعلی دست یافتند، به رفیق اعلی پیوستند و آقای قدسی جا مونده یه صحبت هایی از شهید پسر شهیدش محمد حسن شهیدشون کردن بعد یاد شهید بهشتی دیدم اصلا آب شده اینجا نیست ساعت ده شب ایشون بیاد شهدا بود بعد به من گفت فلانی من به آقای رجایی قبته میخورم او پرکارتر از منه صبح آمده تا ساعت ده شب کار کرده تازه در برابر آقای رجایی کم آورده است امروز ما مسئولینمون باید یه همچی روحیه‌ای داشته باشن تا بتونن این مملکتی رو که دشمن ما در جنگ اقتصادی و در جنگ فرهنگی آمده است که رهاورد خون شهیدان ما و شجره تییبه ولایت ما را از ما بگیرد یه همچه ای لازم است تا ما بتوانیم مشکلاتمون رو برطرف بکنیم و برای مستضعفان عالم الگویی ارائه کنیم که خود به خود مستکبران راه زوال و جهنم را در پیش بگیرند خب ما مسئله دهی ولایت رو در پیش داریم همه شما اهل بیت اسمت و تهارتید قربت امیر المؤمنین رو باید جبران کنید اكمال دین و اتمام نعمت را باید رونق بدید قدیر مبنای انقلاب اسلامی و حاکمیت خداست قدیر مدل حکومت است قدیر سبک زندگی است قدیر جریان حاکمیت عدل و امن است قدیر تبعی ستیز است ظلم ستیز است فساد ستیز است قدیر مبنای حرکت امام و رهبری است قدیر مبنای عشق عاشقان و امیر المؤمنین علیه ابن عبی طالب علیه السلام قدیر را مثل آشورا تو خانه‌ها ببرید فرهنگسازی سازی کنید هم در بود معرفتی مباحث کلامی و اعتقادی هرچی کار کنید زمینه دارد و امروز بنیاد بین قدیر که مرحوم آیت الله خزالی اعلالله مقامه این مسئله را اساسش و بنیان گذاشتن با هماهنگی وزارتخانه ها، نهاد ها سازمان ها، ارگان ها به فعاله اما کافی نیست ما فیلمی لازم داریم ما برای کودکان مهد کودکی ها باید کلاس علی شناسی رو با سبک خودشون بتونیم پیاده کنیم برای دبستان هامون برای دبیرستان هامون برای دانشگاههامون، هامون خودتون رو آماده کنید صاحبان فکر صاحبان نظر صاحبان ابتکار انشاءالله به میدان بیایید و این دهه ولایت را حدود 20 مناسبت در این ایام آخر زیغده و ماه زلحجی وجود داره از جمله مباهله رو فراموش شده است به صحنه بیاریم و این رو انشاءالله برجسته کنیم روز عرفه روز دعاست دعا اسلاحی شماست سلاح ظاهری ما با این سلاح پشتیبانی میشن و الله صلاح نظامی بدون اون انکسار اون ابتحال اون تذرر اون عشق اون دعا اون توسل ده سال تجربه کردید هم مورد تهاجمید روز عرفتون انشاءالله مشکلاتتون با دعاها و دلهای شکستتون برطرف بشه ظهور حضرت را روز عرفه نزدیک کنید انشاءالله تا نمردیم ببینیم حضرت آمدن این نیاز به آمادگی دارد، صفای دل دارد. روز عرفه بعد از شب قدر ممتازترین فرصت برای نیایش و ارتباط با خداوند متعال است. خب برای مسئله پدافند که جز افتخارات است، امیر عزیزمون صحبت‌های کردند، گرامی می‌داریم و امیدواریم این ارتشی که هر روز به حمد رهاورد جدیدی دارد و سپاه ما که بالنده است به خار چشم دشمنانند من هم به این انتصاب جدید امیر موسوی تبریک عرض میکنم و از زحمات امیر صالحی تقدیر و تشکر داریم به انصاف این, این فرماندهان سپاه ارتش اولیاء خدایند بندگان صالح پروردگار متعالان از همشون قدردانی می کنیم مسائلی در مورد عراق و سوریه و و مسائل بیرونی داشتیم که دیگه بنامون برای اینه که این جمعیت عظیم با این صفا با این معنویت با این نور ما مردم آزاری در تریبونه نمادیومه نداشته باشیم خستتون نکنیم و همین مقدار امیده است یا من یقبل و یسیر. ای خدا میشه یه خطبم از ما قبول بشه یه بار برای تو باشی یه بار قاتیم مردم باشیم نمودی نداشته باشیم بودی داشته باشیم نسأل کرد من ندعوک بسم کل اعظم به فاطمت و ها و بعل ها و بنی ها و سر المستودعیفی ها یا الله يا الله، يا الله،, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمین يا اله العا صین يا مجیب دعوت المضطرین نحنا المضطرون با حقایق زهراء با خمسیت ایبه امام زمان ربه سان سلام و عرض ارادت و عرض آمادگی ما را برای جانفشانی در رکاب خودش و در رکاب نایبش به محضر شریفش ابلاغ بفرما. قلب نورانی حضرت را دائما از ما راضی بفرما. در زندان ما را صالح و سالم قرار بده. عاقبت خودمون و کسانمون را ختم به خیر بگردان. ما را در مسیر شهدا قرار بده <تصفح> از خط انقلاب و شهادت ما را بیرون نفرما <تصفح> اله افتدگار آسای پربرکت علمای عامل و انقلابی ما مراجع در خط انقلاب و قدیر ما را خاصه مرجع و رهبر عزیزمان سکاندار کشتی انقلاب را با اقتدار و عزت و معنویت و کرامت و کفایت تا ساحل و ظهور حضرت حجت مستدام بفرما نسل <تصفيق> جوان ما را به سامان برسان <تصفيق> خانواده ها را از نگرانی بیرون بیار <تصفيق> دولت محترم را در ایفاع وعده هایی که به مردم داده است یاری بفرما <تصفيق> در مسائل فرهنگی که انشاءالله اگر عمری داشتیم در خطبه دیگر اونجا انشاءالله بنا داریم راجب مسائل فرهنگی یه مقدار باز صحبت کنیم راجب مسائل مالیاتی که الان مردم عده زیادی به ما مراجعه میکنن مسائل گمرو واردات داد هزاران مسئله و ما مشکل داریم باید مرتب در این ها بگیم گوش شنوا هم وجود داشته باشه مردم هم کمک کنن خدایا به محمد و آل خودت مشکلات این مردم را با قدرت قاهره و رحمت واسعه خودت برطرف بفرما <تصفح> پروردگارا، امام ما اصلاف صالح ما شهدای عظیم و ما از ما خشنود بگردان اعوذ <تصفح> بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ازاجا جاء نصر الله و ورأيت الناس يدخلون في دين الله أففاجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم